دوستان وقتی که رنج میکشیم اکثر اوقات اولین واکنش ما شکایت کردنه در حالی که خدا میخواد که ما سوال درست رو بپرسیم که به درون نگاه کنیم به بالا نگاه کنیم و به اطراف نگاه کنیم شاید شما رنج نکشیدین اما کسی رو میشناسین که دردمنده، شاید جسمی نباشه بلکه احساسی و روحانی باشه به دقت به درس امروز گوش کنید حقایق بسیار عمیق و عملی هست که خدا میخواد ما یاد بگیریم و در زندگی شخصیمون به کار بگیریم و با دیگران هم درمیون در میون بذاریم بیاید در درس امروز با معلممون همراه باشیم به درس دیگری از مطالعه کتاب مقدس خوش آمدید ما در این دوره مطالعه کل کلام خدا رو شروع کردیم و ضمن این مطالعه به کتاب ایوب رسیدیم در جلسه گذشته این کتاب رو مثل یک نمایشنامه سه‌پرده‌ای براتون توضیح دادم پرده اول رو زمینه نام گذاشتیم این جایی بود که ما زمینه وقوع کل داستان رو دیدیم پرده دوم رو مناظره نام گذاشتیم که این وسیع ترین بخش از کتاب ایوب هست که سه دوست او میاند و گفتگویی با ایوب درباره رنج‌های او دارند پرده سوم رو راه حل نام گذاشتیم اون جایی هست که مرد جوان الیهو وارد میشه و صحبت میکنه به خاطر صحبت‌های الیهو ایوب به بالا نگاه میکنه و خدا رو در گردباد میبینه و وارد گفتگوی طولانی با خدا میشه. بعد ایوب راه حلی برای مسئله بغرنج رنجهاش پیدا میکنه. ما به پرده اول در درس قبلی نگاه کردیم و الان آماده ایم که بر پرده دوم تمرکز کنیم. اگرچه پرده دوم که بهش مناظره گفتیم وسیع ترین بخش کتاب ایوب هست همه وقت چندانی برای اون نخواهیم گذاشت. چون همونطور که در جلسه اول گفتم. در پایان این گفتگوها خدا میگه که صحبت های دوستان او درباره خدا و ایوب حقیقت ندارند. سخنان ایوب بسیار بناکننده است. در پایان همین گفتگوها گفته شده که سخنانی که ایوب گفته حقیقت دارند. هرچند هرچن چون چنین چیزی گفته نشده اما فکر میکنم عیوب ایوب که در مورد خودش صحبت میکرد کرد حرفاش زیاد درست نبود. ضمن نگاهی به پرده دوم کتاب ایوب می بینید که ممکنه بعضی دیدگاه ها مفید باشد. اولا ضمن مرور مکالمات بین ایوب و دوستانش که او را متهم می و او به اتهام اونها پاسخ می به این نتیجه می رسید که هر چهار نفر اونها در یک موضوع با هم توافق دارند و در موضوع دیگه به طور قاطع عدم توافق دارند. یادتونه که در جلسه قبلی سؤالی که ایوب از زنش پرسید کلید اساسی کتاب ایوب هست. یادتونه که در جلسه قبلی گفتیم سؤالی که ایوب از زنش پرسید کلید اساسی کتاب ایوب هست. وقتی که زن ایوب از او خواست که خدا رو ترک کنه و بمیره، ایوب به او پاسخ داد مثل یکی از زنان ابله سخن میگویی. آیا نیکویی را از خدا بیابیم و بدی را نیابیم؟ این سؤال بسیار عمیقی هست. همه اون چهار نفر این نقیده بودند که یک شخص خوب باید توقع داشته باشه خدا چیزهای خوبی در اختیار او بذاره چون که او شخص خوبی هست. هر سه دوست ایوب بر سر این موضوع توافق داشتند و بر اون باور داشتند اما جایی که با هم توافق نداشتن این بود که ایوب مردی بود که به نظر می رسید خوب هست اما خدا چیزهای خوبی برای او نیاورده بود این مسئله بغرنج اونها بود چطور این مسئله را حل می کنید؟ ایوب و دوستانش به شدت در این مسئله عدم توافق داشتند دوستان ایوب گفتند ایوب احتمالا توی زندگی تو باید گناه باشه تو حتما خوب نبودی چند سال قبل خادمی رو میشناختم که سه پسرش رو در اثر بیماری از دست داد. اعضای کلیسای کوچک او میگفتند این داستان نشون میده که باید گناهی در زندگی او وجود داشته باشه. طرز تجربه و تحلیل اونها از مساله بغرنج شبانشون و دردمندی او منجر به این شد که شبان راهی یک بیمارستان روحی بشه. امروزه به چنین اشخاصی تسلیدهندگان دهندگان ایوب میگیم. تسلی دهندگان ایوب کسانی هستند که حقیقتاً تسلی نمیدن. دوستان ایوب به او گفتند ایوب حتما گناهی توی زندگی تو هست چون که خدا همیشه چیزهای خوبی برای یک شخص خوب میاره. حالا که او تو رو به این وضع مبتلا کرده میتونه به این دلیل باشه که تو شریر بودی. این به خاطر گناه تو بوده. تو همه رو فریب دادی و خودت رو مرد خوبی نشون دادی. اما خدا قلب تو رو میدونه و او میدونه که گناهی در زندگی تو هست. عدم توافق در این مرحله بسیار قاطع است. عیوب در تلاشش برای حل مسئله بغرنجش به این نتیجه میرسه. او میگه من مطمئنا میدونم که شخص عادلی هستم. من میدونم که مرد درستکاری هستم. در تمام طول این مکالمات عیوب بر این پافشاری میکنه که مرد درستکاری هست و کارهای خوبی انجام داده. وقتی که این قسمت از کتاب عیوب رو میخونید این رو ملاحظه کنید. ایوب و دوستانش موافق هستند که انسان‌های خوب برکت می‌گیرند چون خوب هستند و انسان‌های بد لعنت می‌شوند چون اونها شریر هستند و بعد عدم توافقشون رو ملاحظه کنید که عیوب اصرار می‌کنه من گناهکار نیستم عیوب حتی در یک نکته از صحبتهاش این رو میگه که خدا باید خیلی بی ادالت باشه که اجازه بده این چیزها توی زندگی او پیش بیاد وقتی ایوب اینو میگه دوستانش بسیار ناراحت میشن و میگن خدا نمیتونه ادالت نداشته باشه. این تو هستی که گناهکاری. من این قسمتی که بهش پرده دوم کتاب ایوب گفتیم، حول محور این گفتگوها میچرخه. وقتی که سخنان دوستان ایوب رو مطالعه میکنید، یادتون باشه که در پایان صحبتهای اونها خدا گفته که حرفهای دوستان ایوب درست نبوده. چه زمانی که در مورد خدا صحبت میکردن و یا زمانی که در مورد ایوب صحبت میکردن. وقتی که کتاب و مقدس رو بخونید شما میتونید به وسیله عمل و عکس العمل یاد بگیرید. حتی وقتی که دوستان عیوب اشتباه می‌کردند، اگه حرفهای اونها رو بخونید، میتونید از صحبت‌های اونها حقیقت رو پیدا کنید. وقتی که کتاب مقدس رو بخونید شما میتونید به وسیله برداشت منفی از اونها درس بگیرید. حتی وقتی که دوستان ایوب اشتباه می‌کردند، اگه حرف‌های اونها رو بخونید، اگه صحبت‌های اونها رو برعکس بکنید، از اونها حقیقت رو پیدا خواهید کرد. منظور که شما میتونید به طور گسترده با مطالعه صحبت های اونها از اون بهرهمند بشید هر کدوم از اونها با ایوب به طور متفاوتی رفتار میکنند اما هر سه اونها در این عقیده موافقند که مشکل ایوب به خاطر گناه در زندگی او هست. نصیحت الیفاز به ایوب بر مبنای تجربیات شخصی هست. الیفاز میگه که او یک شب شبهی رو دیده که باعث شده موهای تنش سیخ بشه بنا گفته الیفاز روحی با او تماس گرفته او کسی رو ندیده اما در بین سکوتی مرگبار صدایی رو شنیده که بلیفاس توصیه کرده که بره و نصیحتی رو به عیوب بگه این به ما جنبه دیگری از تسلی دهندگان ایوب رو نشون میده رفتن و دیدن کسی که بیماری بدخیم داره مانند یک خواهر یا یک برادر مسیحی و دعا کردن برای شفای او یک چیزه اما گفتن این به اونها که خدا شب گذشته به من گفته و از من خواسته که به تو بگم تو شفا یافتی و خدا این پیغام رو داده که به تو بدم یک چیز کاملا متفاوت هست یادمه که وکیل جوانی که تازه ایمان آورده بود همسرش داشت از یک بیماری مهلک میمرد یک گد پیش زنش رفتند و پرسیدند که آیا میخواد که براش دعا کنن اونها نه تنها برای شفای او دعا کردن بلکه به او گفتند که وعده ای از خدا برای او دارند که او شفا خواهد یافت اون مرد به اونها باور کرد وقتی که همسرش مرد این وکیل جوان نه تنها زنش رو از دست داد بلکه ایمانش رو هم از دست داد. او میگفت به من گفتن که خدا بهشون گفته که زنم شفا یافته. وقتی که اون زن سی و دو ساله مرد، هیچ خدام از اونهایی که گفته بودند کلام خدا رو دریافت کردن دیگه سر و کلشون پیدا نشد. این چیز ترسناکی هست که بگیم مشورت من به تو، کلامی مستقیم از جانب خداست توسط من. این دقیقا چیزی بود که الیفاز گفت. و خدا به الیفاز گفت که اشتباه کرده. پس ما میبینیم که این خدا نبود که به الیفاز چیزی گفته باشه الیفاز اصرار داشت که رنجهای ایوب به خاطر گناه در زندگیش هست یادتونه اونجا که خدا با شیطان حرف میزد، اونجا که اولین آزمایش ایوب بود و او خوب از اختش بر اومد، خدا به شیطان گفت حالا در موردش چی فکر می کنی؟ آیا در بنده من ایوب تفکر نمودی که مثل او در زمین نیست؟ مرد کامل و راست و خدا ترس که از بدی اجتناب می نماید و تا الان کاملیت خود را قایم نگاه می‌دارد هرچند مرا بران واداشتی که او را بیسبب سبب عذیت رسانم خدا به ما میگه که هیچ گناهی در زندگی عیوب نبود که سبب رنج او بشه پس این سه مرد اشتباه میکنند که به ایوب میگن این گناه در زندگی تو هست که سبب این مصیبت شده بلدد فرزندان ایوب رو سرزنش میکنه عیوب همه فرزندانش را از دست داده بلدد میگه فرزندان تو گناهکار بودند وگرنه خدا اجازه نمیداد که این واقعه برای اونها پیش بیا. بلدد در همه سخنانش به عیوب میگه که یا گناه فرزندانش یا گناهی در زندگی خودش باعث پیش آمدن این وزن بوده. در سومین دور از صحبت هاش ایوب به, به عنوان یک گناهکاری اشاره میکنه که گوی او یک حشره و یا یک کرم هست که چنین بچه های گناهکاری رو به بار آورده. سفر سومین دوست عیوب هست. سفر از جمله مردانی هست که میگویند من نمیدونم تو نمیدونی هیچکس نمیدونه اما عاقلانه اینه که پرهیزگار باشیم و بهش فکر کنیم سفر چیزهای زیادی میگه اما اساس سخنانش بر این هست که سوال میکنه آیا تو میدانی آیا می میدانی آیا کسی میدونه خدا میدونه و تو نمیدونی و بعد به این نتیجه میرسه که باید گناهی در زندگی عیوب باشه که باید توبه کنه و دستهاش رو باز کنه و از خدا طلب بخشش کنه سوفر میگه پس بدان که خدا کمتر از گناهانت تو را سزا داده است. و سوفر ایوب را اینطوری تسلی میده. وقتی ایوب صحبت میکنه، صحبتهای او بسیار بناکننده تر از دوستانش هست. در سخنان ایوب، او سوالات درستی میپرسه و به پاسخ خداوند گوش میکنه و به اون باور میکنه. وقتی میبینیم ایوب این سه کار رو میکنه، مثال ایوب میتونه برکت بزرگی برای دردمندان باشه. ایوب سوالات عمیقی میپرسه و یادتون باشه سطح مکاشفات در زمان عیوب خیلی ابتدایی هست و به این دلیل بسیاری عنوان میکنند که این کتاب قدیمی ترین کتاب کتاب مقدس هست. عیوب و دوستانش به نظر میرسه چیزهایی که ما در بررسی عهد قدیم مطالعه کردیم نمیدونستند اونها مثل من و شما کتاب مقدس نداشتند عیوب سوالاتی مثل این میپرسه آیا من قدرت دارم که به خودم کمک کنم انسان چیز که او را امتحان کنی و این همه به اون فکر کنید. آیا آنچه که برای من اتفاق میافتد خدا می بیند؟ آیا زمان در دستهای خداست ؟ چرا خدا مرا از رحم بیرون آورد؟ چطور از کسی که ناپاک است انتظار پاکی دارید؟ دستان تو مرا فرم داده و تو مرا ساختی. به یاد داشته باش که به من مانند گل کوزگران شکل دادی؟ آیا دوباره مرا به خاک برخواهی گردان؟ سوالات رو ملاحظه کنید وقتی انسان میمیره و دفن میشه؟ روحش کجا میره؟ وقتی انسان میمیره و به خاک برمیگرده و زمانش به پایان میرسه روح او کجاست؟ حالا این سوالی بسیار عمیق است اگر انسان بمیره دوباره زنده خواهد شد؟ وقتی انسان میمیره بعد چی میشه؟ لحظه ای که میمیره کجا میره؟ یک سوال بزرگ دیگهم هست اگر تنها امیدی که من دارم گور هست پس دیگه به کجا امید داشته باشم؟ بعد می بینید که بعد و تمام دلش ناله میکنه آیا کسی هست که بین من و خدا داوری کنه کسی که بر هر دوی ما دست بگذاره او میگه در میان ما حکمی نیست که بر هر دوی ما دست بگذاره کاش که اسای خود را از من بردارد و حیبت او مرا نترساند بعد میبینید که ایوب با اطمینانی این میگه که چون این شخصی وجود داره بعد ایوب گریه میکنه و میگه که من میدونم ناجی من زنده است و میدونم که روزی بر روی این زمین خواهد ایستاد حتی اگر کرم ها بدن مرا نابود کنند بدون بدنم هم خدا را خواهم دید این یکی از بزرگترین و آشناترین آیات در کتاب ایوب هست. ایوب میطلبه دنبالش میگرده و میکوبه در عهد جدید ما میشنویم که عیسی این نصیحت رو به شاگردان میکنه بطلبید به, به شما داده خواهد شد بجویید خواهید یافت بکوبید و در به روی تان گشوده خواهد شد. در کتاب ایوب میبینید که های ایوب او رو به جایی کشونده که دائما میطلبه به دنبالش میگرده و میکوبه. جستجو کردن مشتاقانه سوال کردن هست و کوبیدن مشتاقانه جستجو کردن هست. اما وعده ها انجام شدند. در باز میشه. ایوب پیدا میکنه و دریافت میکنه چون بر او آشکار شده که ناجی خواهد آمد که انسان و خدا رو با هم آشتی بده. یک میونجی هست که دست ما رو در دست خدا خواهد گذاشت اما میبینید که عیوب هنوز ناله میکنه ای کاش میدونستم که او رو کجا پیدا کنم ای کاش که میتونستم که او رو پیدا کنم ببینید این پیغام عهد قدیم هست عیسی خواهد آمد اما کاش میدونستم که کجا میتونم او رو پیدا کنم این چکیده عهد قدیم هست وقتی عیوب و دوستانش مدت طولانی صحبت کردند پرده میافت و پرده دوم به پایان میرسه و ما این کلمات رو میشنویم سخنان ایوب پایان یافته ایوب به سخنان بلدد در طی شش باب پاسخ میده و این طولانی ترین سخنان ایوب هست اونجا که میگه سخنان ایوب تمام شد سخنان دوستانش هم تمام شد هر کدام از دوستان ایوب حدود سه دور صحبت کردند و ایوب هر کدام از صحبت های اونها رو تکذیب کرده دوستان ایوب به این نتیجه میرسند که اونها هرگز نخواهند توانست که ایوب رو قانع کنند که او یک گناهکاره و ایوب همش حرف خودش رو خواهد زد بنابراین اونها دست میکشند و ایوب هم اونها رو رها میکنه. وقتی پرده سوم بالا میاد که به این پرده راه حل نام دادیم ایوب و دوستانش هنوز در کنار صحنه ایستادند اما مرد دیگری هم به اونها ملحق شده این مرد جوان که اسمش الیهو هست میگه من در عمر صغیر هستم و شما موسفید، بنابراین ترسیده جرئت نکردم که رأی خود را برای شما بیان کنم اون موقع اونها به سن و سال احترام میذاشتند الیهو در ادامه میگه به هر حال به این نتیجه رسیدم که حکمت محدودیت سنی نداره حکمت توسط روح القدس میاد و من میدونم که روح خدا رو دارم به این نتیجه رسیدم که شما هرگز نخواهید توانست این مسئله بغرنج را حل کنید بعد او میگه در شما تأمل نمودم و کسی از شما نبود که ایوب را ملزم سازد و سخنان او را جواب دهد. پس من نیز از حسه خود جواب خواهم داد و من نیز رأی خود را بیان خواهم نمود. بعد ما سخنان الیهو را میشنویم و این مرد جوان وارد صحنه میشه و به ایوب میگه که به بالا نگاه کن. ایوب به بالا نگاه میکنه و خدا را در گردبادی میبینه و با خدا صحبت میکنه. وقتی ایوب با خدا صحبت میکنه نمیگه من عادل هستم. او میگه من پست هستم. او میگه من با گوش خود از تو شنیدم اما حالا چشمانم تو را میبینه بنابراین الان از خودم بیزارم و در خاک و خاکستر توبه میکنم بسیاری بر این باورند که الیهو تجلی خداست به عبارتی خدا در جسم انسانی هست اونها بر این باورند که الیهو خدا هست که در صحنه ظاهر میشه و به دعاهای ایوب پاسخ میده اونها معتقدند که خدا الیهو رو فرستاده که به ایوب نشون بده چطور مشکل دشوار رنجهاش رو حل کنه؟ الیهو شاید تجلی خداوند بود مثل اون سربازی که به یوشه نقشه جنگ عریها رو داد. الیهو مرد جوانی بوده پر از روح قدوس خدا. در هر صورت من معتقدم که صحبتهای الیهو راه حلی برای مشکلات رنجهای ایوب بود و نیز معتقدم که سخنان الیهو قلب پیام کتاب ایوب هست. صحبتهای الیهو پاسخ سوالی رو میده که ایوب از زنش کرد. آیا نیکویی را از خدا بیابید و بدی را نیابید؟ آیا یک مرد خوب باید انتظار داشته باشه همیشه از دستان خدا چیزی نیکو دریافت کنه و چیز بدی دریافت نکنه؟ کل کتاب ایوب حول محور این سوال که ایوب از زنش پرسید و پاسخی که الیهو به او داد می‌چرخه. الیهو به ایوب میگه که دستانش رو در وسط این مشکل پیچیده باز کنه و جایی که ایوب از خدا سوال میکنه من باید چه توقعی از خدا داشته باشم؟ اینکه چون مرد خوبی هستم باید خدا همیشه چیزهای نیکو در دست من قرار بده الیهو به ایوب میگه که دستانش رو در وسط این مشکل پیچیده باز کنه حالا یک لحظه به پرده اول فکر کنید اونجا که زمینه ی کتاب ایوب رو داریم شیطان هم همون اتهام رو به ایوب میزنه امروز ما این اتهام شیطان رو روانشناسی مذهبی میخونیم یا یک حمله روانی بر علیه مذهب به نظر میاد که همیشه به این خط میشه که چرا مسیحیان مسیحی هستند؟ چرا انسانهای مذهبی مذهبی هستند؟ این حمله شیطان بر ایوب بود. این موضوعی بود که ایوب و دوستانش پیرامون و اون صحبت می و الیهو هم بر همین موضوع اشاره می در باب سی پنج آیه یک تا هفت من معتقدم که الیهو مشکل پیچیده رنج های ایوب را حل می کنه. وقتی الیهو از ایوب می پرسه آیا این رو انصاف می شماری که گفتی من از خدا عادل‌تر هستم؟ زیرا گفته ای برای تو چه فایده خواهد شد و به چه چیز بیشتر از گناهان منفعت خواهم یافت؟ من تو را جواب می گویم و رفقایت را با تو. به سوی آسمان ها نظر کن و ببین و افلاک را ملاحظه نما که از تو بلندترند. اگر گناه کردی به او چه رسانیدی؟ و اگر تخذیرهای تو بسیار شد برای وی چه کردی؟ اگر بی گناه شدی به او چه بخشیدی و یا از دست تو چه چیز را گرفته است قلب سخنان الیهو اینه او میگه ایوب تو و دوستانت سوالات اشتباهی میپرسی در واقع در کل این مسئله دستهای حریز و کسیفت رو باز کردی و از خدا میپرسی چی در دستای من قرار دادی این سوال غلطی هست. ایوب تو باید اینطور سوال کنی من چی توی دستهای خدا قرار دادم تو در بهبهه های رنج از خدا این سوال رو میپرسی اگه من خوب زندگی کردم، چی نصیبم شده من توقع داشتم با زندگی خوب برکت بگیرم یا اگر گناهکارانه زندگی کردم پس چطور منو برعکس تحت تاثیر قرار دادی خودتو تو در جریان این قضیه هستی میبینی؟ توی این قضیه برای تو چی هست تمام دیدگاه تو اینه تنها کاری که میتونی بکنی اینه که دست خدا رو بر روی مشکلاتت قرار بدی و این سوال رو بپرسی اگر من خوب زندگی کردم چطور او رو خشنود کردم و او رو جلال دادم و او رو برکت دادم و به نفع او بودم وقتی خوب بودم چه نفعی برای خدا داشته و بعد به این فکر کنی که اگر من گناه کاران زندگی کردم این چطور خدا رو آزرده کرده؟ نه اینکه من چطور آزرده شدم الیهو مانند داوود فکر میکرد وقتی که این دعا رو میکرد و خدا شناسیش رو به ما نشون داد او اینطور دعا کرد فقط و فقط در مقابل تو گناه کردم در مقایسه با رنجهایی که داوود به خدا تحمیل کرده بود، رنج‌هایی که خدا به داوود داده بود در چشم مردم چیزی نبود چون ایوب با تمام قلب و وجودش خدا رو دوست داشت. یک زن خداشناس به نام خانم گویون مدت‌ها قبل اینطور گفته: من ترجیح میدم که به جهنم برم اما روح خدا رو یک بار هم محضون نکنم. فقط یک شخص خدا ترس میتونه چنین چیزی بگه یا حتی می‌تونه چیزی مثل این رو درک کنه. فقط یک شخص خدا ترس میتونه چنین چیزی بگه یا حتی میتونه چنین چیزی رو درک کنه. آیا میدونید که وقتی خداشناسانه زندگی میکنید، خدا رو خوشنود میکنید و وقتی گناه میکنید، خدا رو میرنجونید؟ آیا میدونید که در تمام زندگیتون زمانی یا خدا رو خوشنود میکنید یا در تمام طول روز خدا رو میرنجونید؟ این دیدگاهی هست که ما باید داشته باشیم. به قول الیهو، این دیدگاهی بود که باید عیوب می میداشت. در پایان سخنان الیهو، الیهو به ایوب گفت به بالا نگاه کن و به همه چیز از منظر خدا نگاه کن. فقط به درونت نگاه نکن که بپرسی این وسط چی برای من هست. به بالا نگاه کن و این سؤال رو بپرس این وسط برای خدا چی هست. وقتی که دوستان ایوب حرفاشون رو تموم کردن، ایوب اونها رو به شدت توبیخ کرد. اما الیهو رو توبیخ نکرد و کاری رو که الیهو گفته بود انجام داد. ایوب به بالا نگاه میکنه و خدا رو در گردبادی میبینه. عیوب مکالمه طولانی رو با خدا داره. یا میتونیم بگیم خدا با عیوب مکالمه طولانی داشت. چیزی که خدا باید به ایوب میگفت، بابهای زیادی رو در بر میگیره. پاسخ عیوب به خداوند فقط شامل چند آیه هست. این مرد مصرانه بارها و بارها گفته بود که عادل هست، اما در پایان گفتگو با خدا عیوب نظرش کاملا نسبت به خودش عوض میشه. عیوب میگه از شنیدن گوش درباره تو شنیده بودم. لکن الان چشم من تو را می‌بیند و من از خودم کراهت دارم و در خاک و خاکستر توبه می‌کنم. بذارید ازتون بپرسم چرا عیوب در پایان این داستان نظرش نسبت به خودش تغییر کرد؟ عیوب از چه چیزی توبه کرد؟ توبه کردن به معنی تغییر افکار هست، تغییر اراده، تغییر قلب و تغییر مسیر. توبه کردن یعنی بازگشت از مسیر. و رفتن به سمتی دیگر حالا ایوب از چی تو بکرد؟ دوست دارم یک احتمال بدم من یک احتمال میدم به اعتقاد من ایوب در زمره کسانی هست که در روانشناسی به اونها کسانی میگیم که گرایشات مذهبی دارند یک ایماندار منفعتگرا ایوب نمیدونست اما او نسبت به ایمانش شخصی منفعتگرا بود او مرد خوبی بود او ایمان داشت مردی خدا ترس بود اما بدون این که بدون مرد خدا شناسی هست. او مرد خداشناسی بود چون فکر میکرد خدا به خاطر خوبی او چیزهای خوبی در اختیارش میذاره چون که او خداشناس بود و نسبت به دیگران خوبی میکرد خدا به او برکت میده ایوب این رو نمیدونست اما خدا از این رنج استفاده کرد تا او رو وادار کنه که به قلب خودش فکر کنه تا بفهمه فهم انگیزه او اخلاق گرایی بود در این قضیه برای من چی هست؟ وقتی ایوب به بالا نگاه کرد او چیزهای زیادی که قرار بود در نگاه به درونش ببینه دید. بالاخره در پرده سوم این نمایشنامه ایوب به اطراف نگاه میکنه. وقتی او این دیدگاه را از خدا میگیره از یک ایماندار منفعتگرا بودن توبه میکنه. خدا نزد سه دوست ایوب میاد و اونها رو توبیخ میکنه. خدا به اونها میگه که هر چیزی که درباره او و ایوب گفتند اشتباه بود. بعد ایوب برای دوستانش دعا میکنه و شفاعت میکنه. بعد وقتی ایوب برای دوستان شفاعت میکنه خدا به ایوب دو چندان آنچه از پیش داشته عطا میکنه بسیاری بر این باورند که ایوب داستانی از مرد خداشناسی هست که ثروت هنگفتی داشته و مذهبی بوده خدا همه ثروت این مرد رو میگیره اما او همچنان در ایمانش پابرجا میمونه و خدا رو میپرسته بنابراین خدا تمام دارایی اون مرد رو دو برابر میکنه این درکی آبکی و ساده از کتاب ایوب هست. حقیقتی عمیق در اینجا هست که ملاحظه میکنیم تا زمانی که ایوب برای دوستانش دعا نکرده بود، خدا او رو برکت نداد و اموالش رو دوچندان نکرد. آیا تا حالا به این مطلب در کتاب ایوب توجه کردی؟ کتاب ایوب به ما میگه که سه دیدگاه در زندگی هست که خدا میخواد ما اونها رو درک کنیم. خدا میخواد که به درون نگاه کنیم تا حقیقت خدا ما رو نسبت به خودمون آگاه کنه. خدا میخواد که ما به درونمون نگاه کنیم و گناه رو در زندگیهامون ببینیم خدا میخواد که به اون گناهان که در درونمون دیدیم اعتراف کنیم او نمیخواد که در همون جا بمونیم اگر همون جا بمونیم زندگیمون به همون شکل باقی میمونه چون شما نمیتونید کاری بکنید دومین دیدگاهی که خدا میخواد در زندگی داشته باشیم نگاه به بالا هست خدا میخواد که به بالا نگاه کنیم و همه چیز را از منظر او ببینیم خدا میخواد که او رو در مرکز زندگی هامون قرار بدیم تا اینکه هر چیزی که در زندگیمون واقع بشه واکانشمون نباشه که اوه چرا من؟ چرا مال من؟ یا این چه نفی به حال من داره؟ یا چرا گذاشتی این اتفاق برای من بیفته؟ اگه به بالا نگاه کنیم و دیدگاه خدا رو ببینیم میتونیم بگیم خدایا تو در این قضیه چطور جلال پیدا میکنی؟ حتما تو به این اجازه دادی؟ به من فیزت ها فرما تا بتونم از عهدهه این بر بیام. طوری که مردم رو به سوی تو هدایت کنم. به هر حال تو به این وسیله جلال پیدا می کنی. این دیدگاه درستی به ما در رنجهامون میده. وقتی عیوب به درون نگاه کرد و بعد به بالا نگاه کرد و بالاخره به اطراف نگاه کرد و برای دوستانش دعا کرد به نظر می رسید که خدا گفت حالا تو شاگرد ممتاز کلاس شدی. چون کسی که به بالا نگاه میکنه و به درون نگاه میکنه، حالا آماده میشه که به اطراف نگاه کنه و بخشی از راه حل من و بخشی از جواب من در زندگی افراد دردمند باشه حقیقت بسیار زیبایی در کتاب ایوب هست وقتی خدا ثروت او رو دو برابر میکنه اگه برگردید و به پرده اول نگاه کنید خواهید دید که ایوب هفت هزار گوسفند داشته وقتی خدا ثروت او رو دو برابر کرد خدا به او چارده هزار گوسفند داد و بقیه اموالش رو نیز به همین ترتیب دو برابر کرد اما می بینیم که به او هفت پسر و سه دختر داده. چرا به او چارده پسر و شش دختر نداد؟ این جاییه که خدا به یکی از سوالات درست ایوب پاسخ میده. اگر کسی بمیره آیا می تونه دوباره زنده بشه؟ وقتی گوسفند می میره اون یه مرده است. وقتی شطورها مردند اونها دیگه مردند. پس وقتی خدا حیوانات ایوب رو دو برابر میکنه خدا باید به او دو برابر گوسفن و دو برابر شطر اما وقتی پسران و دخترانش کشته شدند، اونها نموردند. اونها فقط در بعد دیگری از زندگی تحصیل می کردند. از نقطه نظر خدا برای اینکه ایوب عیوب چهارده پسر و شش دختر داشته باشه، خدا فقط باید هفت پسر و سه دختر دیگه به او میداد. چون او پیش آپیش هفت پسر و سه دختر در آسمان داشت. می بینید خدا چطور به سوال عیوب پاسخ میده؟ آیا کسی که بمیره دوباره زنده خواهد شد؟ آن کسانی رو میشناسم که فرزندانشون رو از دست دادن و این حقیقت رو در کتاب ایوب دیدن اگر از اونها بپرسید چند تا بچه دارن اونها به شما میگن چند تا بچه دارن به علاوه اونهایی که در جایگاه ابدی هستن اونها ایمان دارن که فرزندانشون زنده هستن و این رو از کتاب ایوب یاد گرفتن کاربرد دیگری از کتاب ایوب مربوط به روانشناسی مذهبی هست در اجتماعات ایمانی ما انواع مختلف انسان‌ها رو داریم کسانی هستند که با مسیح بخشنده ملاقات کردند و متقاعد شدند که مسیح مشکل گناه اونها را حل کرده. بنابراین اونها همه تشریفات، حکمتها و قوانین کلیسا را می و هیچ خودم را درک نمی و فقط روی نیمکتها می نشینن. یا کسانی هستند که با مسیح شفا دهنده ملاقات کردند و ایمان دارند که مسیح اونها را شفا داده و اونها هم روی نیمکتها می نشینن. شاید با ایسای روانپزشک ملاقات کرده باشند و ایمان دارند که مسیح مشکلات احساسی اونها را حل کرده و یا متقاعد شدند که حل خواهد کرد اونها هم روی نیمکت ها مینشینند و یا با مسیح شخصیت دهنده ملاقات کنند. اونها عضو باشگاهی هستند اونها در کلوب های اجتماعی احساس راحتی نمی کنند اونها حتی در خونه زیاد درگیر کاری نمیشن بنابراین به کلیسا میان و احساس می کنند کلیسا مکانی هست که به اون تعلق دارند. و این تنها دلیلی هست که اونجا حضور دارند چون که این وسط چیزی گیرشون اومده و به این دلیل روی نیم کتا مینشینه حالا این افرادی که شرط دادیم هیچ کدام کلیسای حقیقی ایسای مسیح نیستن این افراد میتونن اشخاصی منفعتگرا اون کلیسا باشن همه این کسان با این سؤال ایمان آوردند خدا یا میخوای توی زندگی من چیکار کنی؟ کتاب ایوب میگه گوش کنید بذارید راجب مردی براتون بگم که روانشناسی مذهبی در ایمان رو هزاران سال پیش به کار گرفت. وقتی او روانشناسی مذهبی رو در ایمان خودش به کار گرفت، او یک ایماندار منفعتگرا بود. او از این اطلاع نداشت، اما انگیزه او منفعتگراهی بود. وقتی خدا او رو واداشت که به درون نگاه کنه، خدا مشت کوچکی از طمع خودش رو در بحبه تجربیاتش به او نشون داد و این مرد توبه کرد او دست خدا را در مرکز تجربیات خودش در زندگی قرار داد و به لحاظ روحانی رشد کرد این مرد پس از اکتشاف درون خودش 145 سال دیگر زندگی کرد سال خورده شد و بعد مرد پولس رسول نمونه ای از کسانی هست که میدونند در مرکز تجربیات ایمانیشون چی قرار گرفته وقتی که پولس رسول در راه دمشق با عیسی مسیح ملاقات کرد او سوال نکرد که خداوندا خواهی برای من چیکار کنی پولس پرسید خداوندا از من میخوایی چه کار کنم؟ این بلوغ روحانی هست. یک شخص بالغ روحانی دست خدا رو در مرکز تجربیات زندگی و ایمانش قرار میده و یاد میگیره که این رو سوال کنه. خدایا من باید چی توی دست تو بذارم؟ از من میخوای چی کار کنم؟ از من میخوای که چه مشارکتی در کارت بکنم که برای تو جلال بیاره. خدا غالبا از ابزار رنج برای رشد روحانی ما استفاده میکنه. کتاب ایوب داستانی هست که نشون میده خدا چطور از ابزار رنج برای رشد مردی استفاده کرد که مرد خوب و خداشناسی بود و بدون این شناخت او یک مرد خداشناس منفعتگرا بود و نگران این بود که خدا برای او چیکار خواهد کرد. خدا اجازه داد و از ابزار رنج برای رشد این مرد استفاده کرد تا جایی که او اینطور دعا کرد. خدایا چی کار میتونم برای تو بکنم؟ دیگه نمیپرسه تو چی توی دستای من قرار میدی بلکه میپرسه من چی میتونم در دستان تو قرار بدم و این چیزیه که مسئله بغرنج رنجهای او رو حل میکنه این پیغام کتاب ایوب هست قالب اوقات این مفهومیه که پشت رنجهای زندگی من و شما قرار داره اگر الان دردمند هستید کتاب ایوب رو بخونید و ببینید خدا به ایوب در خلال رنجها چی نشون داده؟ و ببینید شاید او پیغامی برای قلب دردمند شما در کتاب ایوب داره. به درون نگاه کنید و بعد به بالا نگاه کنید و بعد همچون ایوب و اطراف نگاه کنید و ببینید کی هست که باید براش دعا کنید. در عهد جدید در کتاب رومیان 828 خدا به ما وعدهی میده و میگه میدانیم همه چیز برای خیریت آنانی که خدا را دوست دارند و به حسب اراده او خوانده شدهاند با هم در کارند. آیه میگه که اگه خدا را دوست داشته باشیم و بر حسب اراده او فرا خوانده شده باشیم خدا میخواد از همه چیز حتی رنج برای خیریت ما استفاده کنه. اگه زمانی در زندگیتون دچار رنجی شدین به درون نگاه کنید و ببینید آیا دلیلی برای رنجتون هست؟ به بالا نگاه کنید و از خدا سوالی بپرسید. بعد وقتی اون به شما جواب داد، به اطراف نگاه کنید و ببینید خدا میخواد توسط شما به کی برکت بده. خدا نقشه عالی برای زندگی شما داره. دعا میکنیم که این درس باعث رشد شما در ایمانتون و دریافت نقشه اون برای زندگیتون باشه.